و من تبعهم هم به احسان یوم الدین دوستان عزیز، اولین برنامه ما پاسخگوی ای سوال است که چرا عقیده اسلامی را میخانیم؟ و چرا یک انسان مسلمان زیاتر باید احتمام به با عقیده داشته باشه؟ و ای برنامه های ما چرا مشخصاً نام عقیده در قرآن و سنت نامگذاری شده دوستان عزیز، اول عقیده اساس دین است چی مانا عقیده اساس دین است؟ یعنی هر چیز از خود اساس داره و بنیان داره شما اگر یک تعمیر میسازین، اصلا باید سر امو اساس و تهداب تعمیر نخست فکر بکنین که اگر اساس و تهداب تعمیر خراب شد تا به آخر تعمیر نمیتونه که به شکل مستقیم پیش بره و اگر او تعمیر به حساب جورم شد یک روزی ببینین که چپه شده و دیوالایش از بین رفته از این خاطر هر انسان اوشیار و دانشمنده که انجینیره که میخواه که یک تعمیر بسیار بلند منزل ست منزله 180 هشتاد منزله بسازه و حتی یک تعمیر دو منزله و یک منزله بسازه نخست سر تهداب به ازی بسیار دقیق فکر میکنه که بر ازی چه قسم تهداب بسازه که بقیه بناها ازی مستحکم شود اگر یک کس عالم ریاضی میخواه تربیه بکنه اساسات ریاضی رو برش درس میده اگر اساسات ریاضی رو نفامه هرقدر قدر که برش باز در سای بلنده به ته او نمی فهمه. پس مجبور است که اساس و تهداب امی شاگرد خدا زیر بنای اصول جور بکنه که ای شاگرد چی استفاده میتونه بکنه با کدام طریقی خوب میتونه ای شاگرد استفاده بکنه و طبعا وقتی ای شاگرد استفاده خوب کرده میتونه که ای شاگرد از اساس پخته باشه، تهدابش پخته باشه. به شکل در سایر علوم ساینسی در تکنولوژی، در کامپیوتر، در هر چیزی که است اساس و زیربناه بسیار مهم است عقیده اسلامی وقتی ما می مسلمان واقعی باشیم مسلمان واقعی وقتی ما شده می که اساس اسلام اساس ایمان ما باید مستحکم باشه و اساس اسلام چیست اساس ایمان چیست ما کل ما مسلمان هستیم الحمدلله رب العالمین و حتی اگر صدای مرا یک کسی که غیر مسلمان می میشینوه او باید اول اولین نقطه که باید او بفامه او ای هست اس که اساس عقیده ای اسلام چی هست بای خاطر نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیزده سال کامل در مکی مکرمه فقط درس عقیده میداد فقط درس عقیده بود قولوا لا اله الا الله تفلحو مردم از سیزده سال وادار ساخت شاگردهی را تری کرد که تا لا اله الا الله بکوین و این مفهوم از زبانشان و قلبشان زبان را بگوین و قلب را تصدیق بکنن و اعضای بدن مطابق از او برنامه 24 ساته زندگی خود بسازه عقیده اساس اسلام است، اساس دین است و اگر کس در عقیده خود مشکل داشت و عقیده درست نداشت ولو که روزانه 500 رکات نماز بخوانه، کل سال روزه بگیره تمام مال خود را اسلام مصرف بکنه تمام اعمال ازو هبا امنصورا هیچ به دردش نمیخوره اما اگر عقیده درست داشت یک عمل کوچک که میکنه این عمل کوچک در اعمال نامی ازی در ترازوی میزان ازی به اندازی یک کوت و یک خروار محاسبه میشه ازی ای خاطر است ای ارزش اساسی عقیده اسلام که اساس دین تشکیل میده ما باید عقیده خود اول بسازیم. دوستهیز دومین نقطه‌ای است که ما عقیده اسلامی رو چرا میخوانیم میگیم ما عقیده اسلامی رو به خاطر عزی میخویم بخونیم برنامه ها بسازیم به خاطر ازی که بدون عقیده دین حق به دین باطل مبدل میشه. اگر یک انسان ولو مسلمان است لکن عقیده درست اسلامی را نمی با وجود از که او فکر میکنه که والا دین ما حق است و اسلوب ما حق است و روش ما حق است این انسان به باطل در حرکت است احیانا مبتلا به شرک میشه احیانا ای مبتلا به بدعت میشه احیانا ای به حضل و استحضا در دین مثلا آغشته میشه به ای این انسان به شکل از اشکال بلاخره روزی از چوکات دین مبرایه با وجود از که پدرش مسلمان باشه مادرش مسلمان باشه و خودش هم بگه که من بسیار مسلمان خوب استم به این خاطر بدون داشتن عقیده و اگر عقیده صحیح نداشت این انسان به بطلان حرکت میکنه خودش فکر میکنه که والا ما در راه درست استم لیکن چون عقیده قرآنی را نمیفهمه عقیده اسلامی رو نمی فهمه. عقیده عقیده‌ای که از قرآن و سنت رسول الله صلی اللہ علیه گرفته شده اگر این رو نفهمه ولو که این ادعای حق بکنه باز می انسان در باطل میره به خاطر اینکه نجات در قرآن است و نجات در سنت است و رسول الله صلی الله علیه وسلم بر ما قرآن عظیم شان ترک کرده و سنت خدا ترک کرد و شاگردایی را که تربیه کردن آل بیت پیغمبر و صحابه کرام و تابعین و تب تابعین همه از اینا کسانی بودن که پرچم توحیده بر جهان انتقال دادن دوستای عزیز سومی علت که ما چرا عقیده اسلامی رو باید بخوانیم و بفامیم و بر او برنامه بگیریم بخاطر ازی که ضعف عقیده ضعف تمام اعمال است چرا یک نفر آماده هست که خون به خاطر راه الله جل جلاله بریزانه چطور یک انسان آماده میشه که مال خدا به خاطر رضایت الله جل جلهو مصرف بکنه چطور یک انسان آماده میشه که انرژی خدا به خاطر الله جل جلهو مصرف بکنه وقت خدا به خاطر الله جل جلهو مصرف بکنه اساس کل ذی عقیده درست است اگر انسان عقیده درست داشت برنامه 24 ساعته زندگی ازی هدفمند میشه و ای انسان هدفمند مال زندگی خون تمام اعضای بدن خدا، تمام خانواده خدا کلشه قربان میکند تا که رضایت الله جل جل را حاصل بکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله جل هم میگه که الله خریده است از مسلمان ها اموالشان را و نفس هایشان را یعنی پولشان مالشان هم الله خریده و ساختمان فیزیکی جسمشان ایره هم الله از پیششان خریده به خاطر که در مقابل از تجارت الله برشان جنت وعده داده است انال اگر انسان عقیده قوی داشت هر عمل از او قوی میشه نماز به طریقی رسول الله صلی الله علیه وسلم میخونه مال خدا به خاطر رضایت الله مصرف میکنه حج به خاطر رضایت الله جل جلاله میکنن جهاد به خاطر رضایت الله جل جلاله میکنه دعوت به خاطر رضایت الله جل جلاله میکنه و علم و تعلیم و درس و هر چیز میاموزه به خاطر الله جل جلاله ازی راضی شون و چرا این همه به خاطر ازی میکنه که الله راضی شوه به خاطر که ای عقیده قوی داره و می که کل زندگی زندگی دنیا نیست این زندگی روز تغییر میکنه و باز زندگی دیگی هست که زندگی ابدی، زندگی دائمی زندگی است که اگر امروز چل سال تو کار میکنی باز روز آخرت چل میلیون ساعت راحت احساس میکنی یک دقیقی از اینجا ببینین یک روز قیامت یک هزار سال دنیا هست پس اگر یک روز در دنیا کار میکنی یک هزار سال مثل که در آخرت بر خود راحت جور کرده باشی پاداش عجیب است نقطه سومی را هم خدمتتان عرض کردیم که ضعف عقیده ضعف تمام اعمال است و قوت عقیده سبب میشه که تمام اعمال قوی شوند پس اگر می خواهیم که مسلمان درست باشیم اگر می خواهیم که احکام الله جله جله را به شکل درست تطبیق بکنیم اگر می که نظام الله را قبول داشته باشیم و اگر می که عبادت خود خاص به الله جل جله بکنیم و اگر می که غلام مخلوق نشیم بنده مخلوق خدا نسازیم و عبادت را که الله گفته بر ما که به شکل ایا که و تعهد با الله بکنیم و 24 ساعت فقط از الله استعانت بخواییم و با الله رجوع بکنیم یگانه راه نجات همی است که اگر می خواهیم که تمام زندگی ما جور شود تمام اعمال ما جور شود این متعلق به قوی عقیده هست هرقدر عقیدت قوی شد با مو اندازه اعمالت جور میشه بمو اندازه آمادی قربانی میباشی با مو اندازه احکام الله جلجاله را بالای خود ست تطبیق تدبیق میکنی و هر قدر عقید ضعیف شد با مو اندازه از دین و از راه حق و از صراط المستقیم انسان دور میشه این از اهمیت عقیده برادرای عزیز خواهرای محترم بای با خاطر ما عقیده اسلامی را میخانیم عقیده اسلامی رو می فهمیم تا ای که تمام اعمال ما اصلاح شود چهارمین دلیلی که ما عقیده اسلامی رو باید بخوانیم و سرزاو زیاد تأکید بکنیم ای بخاطر از ای هست که دوستای عزیز عقیده ضعیف، عقیده ضعیف سبب ایجاد سطحا سوال میشه ای چرا اوتو شد او چرا اوتو شد ای چرا ای قسم است چرا مثلا صحابه کرام از پیغمبر سوال نمی که چرا نماز صبح درکات رکات فرض است چرا چهار رکات پیشین چهار رکات فرض است چرا دیگر چهار رکات فرض است چرا صبح درکات فرض نیست سوالهای عجیب و غریب بسیاری کسایی که برشان صطها سوال پیدا میشه. چرا هجاب فرض است چرا باید نماز بخوانیم چرا باید حج بکنیم اناله دوستای عزیز اصل مشکل اساسی در چی هست در ضعف عقیده هست در یکی از صنفهای پوهنتون یک روز رفتم یکی از شاگردا بر ما گفتن که استاد ما تقریبا یک سال است که درسای اسلامی می خانیم. یک روز درباری حقوق زن صحبت میشه سوال می کنیم استاد بر ما دلایلش بیان می کنی. یک روز درباری حقوق طفل یک روز در باری حقوق حیوان یک روز درباری زی که چرا عبادت بکنیم یک روز درباری ازای که چرا انسان خلق شدیم یک روز بخاطر ازای که چرا عبادت بکنیم یک روز بخاطر خاطر ای زی... گفت بر ما تا در طول سال صدها سوال ما جواب گفته شده لاکن هنوز هم سوالای ما خلاص نشده و هنوز هم قناعت ما حاصل نشده بناءا سوال اساسی ما است که ما چطور بتانیم که تمام سوالای خدا جوابش ها بگیریم و چطور میتونیم که در راه خود پایدار و مستحکم باشیم پایدار و مستحکم باشیم ما گفتم برادر عزیز تهداب وقتی که خراب شد هرقدر که که سرزو دیوال پخته را جور بکنی باز هم چون تهداب است، ای دیوال پخته چپه میشه شما تهداب پخته بسازیم با بعد ازی که ای تهداب پخته شد با ست منزل سرزی تهداب جور بکنین باز ای تهداب بر شما ست منزل دیوار سرزی بالا میشه ای تهداب ما چرا خراب است؟ مفتوم مشکل اساسی است که شما تابال عقیدی توحید درست قلب تان جای نگرفته درست عقیده را نفامیدین. درست بسم الله الرحمن الرحیم میخانین لکن تابال به که الله رحمن الرحیم است به این هنوز در قلبتان کاملا متیقن نشدین چرا یک زن مثلا در افغانستان سوال میکنه که چرا ما هجاب بپوشم، چرا ما سرلوچ نگردم چرا ما به هجاب نباشم و چرا با تبلیغات غیر مسلمان متاثر میشه؟ میشه علتشی است که غیر مسلمانها ها سر کسای کار میکنن که اینا ضعف عقیده دارن برش میگه والا هجاب که است حق تو را کم می سازه تو چرا باید مردا چرا حجاب نمیکنه زنا باید هجاب بکنن اما یک زن در اروپا مسلمان میشه و در جایی که زنای دیگه با بسیار بدبختی وضعیت بسیار خراب دارن لکن ایزان مسلمان چی میکنه ای زن مسلمان در یکی از جملاتش ما میگه وقتی که من دین مقدس اسلام قبول کردم و ما وقت بای عقیده شدم ببینین اثر عقیده در حجاب میگه روز که ما بای عقیده شدم که الله جل جلوه ذات الرحمن الرحیم و ما هر کار خود شروع میکنم با بسم الله الرحمن الرحیم و وقتی که ای عقیده در مغز و در فکر ما و در قلب ما جای گرفت بعد می فهمم از این ما که هر امری که ای ذات رحمان الرحیم رحیم بکنه امرش به اساس رحمت است و سرما مهربان است که امر کرده بنا ای زن گفت ما به این نتیجه می رسم که اگر الله جل جلاله بر من بگوید که تو مال در راه الله مصرف کو در حقیقت به اساس مهربانی که در اینمی مالمه برای من ضرر است من ای ربای در درای مثبت مصرف بکنم از این خاطر مهربان است برای رای راه درست و نشان داده که ایمالتت ایران مصرف نکو ده ایران مصرف کو اگر بر ما گفته که حجاب بپوش و موی تپت کو و در مقابل مردای نامحرم سر تلوش نکو از مهربانی الله جل جلوه است به خاطر اینکه مهربان بالای من مهربان است از این خاطر چون من عقیده دارم که او ذات مهربان است هیچ حکم از او خلاف مهربانیش نیست پس من میفهمم که صد فیصد حجاب به منفعت من هست ولو که تمام دنیا به حجاب شود ولو که من کشور اروپایی زندگی می کنم باوجود از این هم من به مهربانی خالق خود باور دارم از خالق کده هیچ کس بر من مهربان نیست نه پدرم، نه مادرم نه رئیس جمهور نه پلیس نه کسایی که قانون می سازد از همه از اینا کده، الله جل جلاله بر من مهربان تر است پس وقتی که او ذات مهربان است از این خاطر او ذات مهربان بر من قانون مهربانانه ره امر کرده قانون سخته به اساس مهربانی و حکمش به اساس مهربانی است و اوامرش به اساس مهربانی است به با این خاطر ما با تطبیق احکام الله جل جل می میتانم که براتان بگویم که تطبیق احکام الله جل جل بر ما سبب راحت میشه چرا تطبیق ذات رحمان رحیم است و بنافع ماست نقطه پنجمی است که اگر عقیده درست باشه انسان اسلام را شکل کامل میپذیره عبادات فردی را میپذیره اجتماعی را میپذیره سیاست اسلام را میپذیره اقتصاد اسلام را میپذیره تمام برنامه های اسلام که تعلیمی تربیهوی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تمام چیزی را که اسلام برای انسان گفته کل از رو میپذیره. چرا بعضی کسا مثلا میگه من نماز قبول دارم روزه را قبول دارم اما سیاست اسلام قبول ندارم اقتصاد اسلام قبول ندارم؟ علتشی است که ای در عقیده خود و در اندیشه خود ضعیف است. عقیده اسلام درست نمیفهمه. آیا عقیده؟ تو میشه که عقیده را ما مثلا توتا توتا بکنیم؟ آیا میشه پیش یک کمونست برین برش بگوین که تو میتانی کمونست شوی نصفت، نصف فکر و عقیده به عقیده کمونیزم باشه ولی اقتصاد بهی از مکتب دگی بگیری میگه نخیر. اندیشه یا کامل گرفته میشه یا هیچ گرفته نمیشه اگر برای یک سوسیالیست بگویی، اگر برای یک کپیتالیست بگویی، اگر برای یک دموکرات بگویی، ارگز نمی پذیره میگه نه برادر. وقتی که اندیشه شد، اندیشه تفکک قبول نمیکنه، کنه، شکستگیر قبول نمیکنه، پارچه پارچه را قبول نمی کنه. خب، پس عقیده اسلامی، اندیشه اسلامی، آیا ای را می پذیره که یک مسلمان نماز خود در مسجد بخوانه. نماز صبح و پیشین دیگر را مسجد بخوانم باگه من نماز شام در کلیسا میخوانم نماز شام خوفتنم در مندر میخوانم اجازه برش داده نمیشه اینالا چطور ممکن است که یک انسان مثلا عقیده اسلامی را بگه من میپذیرم نماز را قبول میکنم روزه را قبول میکنم اما من برعکس زین نمیخوایم که اقتصاد اسلام قبول بکنم یا سیاست اسلام قبول بکنم سیاست باید خود ما بسازیم نظام سیاسی را خود ما بسازیم از این خاطر این مشکلات بر از این انسان چرا پیدا میشه؟ معلوم میشه که عقیده اسلام درست نمیفهمه و یه عقیدش یک امریکایی مسلمان شده بود گفت یکی بای چوز است و یکی بای چانس است شما گفت اکثر مسلمانا مسلمان ها بای چانس کی مسلمان شدین نا عقیده را مطالعه میکنین، نا قرآن میکارین، نه در سر آیات قرآن فکر کردین و نه حتی ترجمه قرآن میفهمین و حتی لفظ قرآن هم درست فامین. فقط نام است که ما مسلمان هستیم، ما پیرو محمد صلی الله علیه و سلم هستیم لکن از نگاه قانونی این چیز تان به عقیده اسلامی نمیماند برعکس گفت ما مسلمان های بایچوز هستیم که وقتی مطالعه کردیم، عقیده را فامیدیم، بعد از او اختیار کردیم. اله اسلام به شکل کامل میپذیره از این خاطر دوست عزیز کسانی که اسلام میخوان تجزیه بکنند دین تجزیه بکنند این مردما ها کسایی هستند که در حساب عقیده اسلامی خود اینا عقیده درست نداشتن. اگر عقیده جور شد تمام ارکان و احکام دین ششمی نقطه ای است که تمام از این جور میشه و اگر عقیده خراب شد تمام ازی خراب میشه کس که عقیدهش خراب است نمازش خراب است کسی که عقیدش خراب است روزش خراب است کسی که عقیدش خراب است زکاتش خراب است حجش خراب است کلش گدواد است اما کسی که عقیده خوب داره با معقیده مستحکم خود تمام احکام اسلام به شکل کامل میپذیره و به شکل کامل تطبیق میکنه پس صحیح بودن عقیده صحیح بودن تمام اعمال است هرقدر که عقیده قوی باشه ما اندازه اعمال قوی میشه هر هرقدر عقیده ضعیف شد به ممتاز عمل مطابق عقیده بالا رفته میره قربانی به مطابق عقیده بالا میره هر قدر که عمل کم شد ضعیف شد عقیده ضعیف شد عمل کم و ضعیف میشه به این خاطر در هر بخش زندگی انسان عقیده تحصیل بسیار مهم داره و افتومی و آخرین نقطه‌ای است که عقیده سعادت دنیا عقیده سبب هفتمی سع... و آخری نقطه ای است که عقیده سبب سعادت دنیا و آخرت است پس اگر ما می خواهیم که سعادت دنیا و آخرت نصیب ما شوه باید عقیده خود بسازیم و عقیده خود جور بکنیم تا که هم سعادت دنیا در دنیا آرامش و روانا آرامش پیدا بکنیم هرقدر عقیده بلند شد به ما اندازه سطح آرامش و رو... روان انسان آرام می باشد. روح انسان آرام می باشه عقیده کسی بود، تشویش، مشکلات، از نگاه سیکلوجی هم انسان رواناً 24 تا تشویش زندگی میکنند. از این خاطر اگر میخواییم که سعادت دنیا و سعادت آخرت حاصل بکنیم، کاری که میکنیم و چی است که سر عقیده خود کار بکنیم. دوستان عزیز، ای که چرا عقیده در قرآن و سنت میخوانیم این رو به برنامه بعدی که الله تعالی اگر زندگی بود، باز هم در خدمت شما دوستان عزیز قرار خواد گرفتیم تا برنامه بعدی شما را بر درب سلیجلال میسپاریم الله جل جلاله بر ما توفیق بده که عقیدی داشته باشیم مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و السلام علیکم و الله و